اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى ال طيبين الطاهرين المعصومين لا فداه من تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اشفنا جميعا واشفنا رحمنا ارز شد که مرحوم استاد این عدله ای رو که در کلمات مرحوم شیخ آمده ایشون یک جا نقل کردن که مثلا مرتبت بشه. این جنبه آیه مبارکه به عنوان وجه سالس در تندیبیشان وجه تنه با قول از که دیروز ارز کردیم ایشون فرمان در آخر قایت ما استفاده این آیه وجوب الاشتناف من تکلمه بر کز و اما اعدامهو فلا لا نوجه به اعدام و, و جمعی ما که یک که اکثر تواریخ و نهبا باید اینکه اعدام کز حالا اینطوری که ایشون فرمیدن اینکه فرمیدن معناش اعدام نیست خب بحث سر همون قسمتی است که من دیروز عرض کردم اگر معناش اشتناب برانه این که شما یک جانب باشون هم یک جانب مطبعا در زندگی شما اعدام باشه و اما وجه به اعدام و جمعی مافیه کزبون ظاهرن مراد از اجتناب جانب بودن و جانب بودن و یا به تحبیل ایشان اعدام و تفسیر گرسن ظاهرن ولی این مهم الله سبحانه وتعالی ظاهرن مراد از این اجتناب این هست که انسان تحت تأثیر و قرار نگیره لازم نیست که مثلا من کتاب تاریخ تبریخ تو خونه خودم دارم میدونم که این تاریخ معظم نقلاش هست و از مثلا سیفه نامر تمیمی سه کذاب و وضاعه. این هم یک نوع اعدام لازم نیست که حتما اعدام خارجی بشه یعنی در حقیقت همون نقطهی که شیف و عده از علمای ما متعرض شدن که اگر حفظ کتب بشه بدون اینکه که انسان تحت تأثیر قرار بگیره این مثلا در نغرد اجماع یا این مطلوب می ایشون ظاهرن مطلوب رو پرسن خود اعدام با به عنوانه به جمعه مراتبه اثبات این مطلب هم انصافن هم از ظاهر آیه هم از کلمات و علما خیلی روشن نیست بحث دیگر اگرم باشه مراد جهد دیگری که بعد عرض میکردم. آیه دیگری که ایشون تمسو کرمودن تواند شیخ آیه مبارکه اولکه این راجع به آیه وشتنه گوه قول از زور حالا نظر خود این حقیقت اما تحصیل رو دیگه موحب بردادین این جور کنیم از شد که رانخدمتون که ما یک مشکل کلی در تمسک با آیات کتابی داریم در اطلاقات و عمومات و او در موارد فیر این اصولا باید یک نحوی بی حل بشه و چند بار من این توضیح رو دادم این دیگه از همون قرن، اول از زمان صحابه که شروع شد هی hey, دائرش توسعه پیدا کرد اون مقدار تمسکه با آیات کتاب در احکام مثلا فرض کنید میگفتن ترکیب در وضو لازم نیستیم با مثال فخصور و وجوه کن و ایدی هکم ممکن انسان دستش قبل از سور, از سور. مثلا بزنیم چون واب در لغت عربی اختزای ترتیب نداره و تمثلت میکنیم به اطلاق آیه موارد این خلاصه تصورش میکنیم بعدها این بحث مطرح شد که آیه اطلاق داره آیه یا نه مثلا آیه نازره به این مقامه یا به اصطلاح امروزی که ما در اصول آیه در اصل تشریعه در مقام بیان از این حیثیت نیست که صورت اول باشی یا ده اول باشی. این یه صدقه مناقشه که الان ما اصولی ها غالبا این مناقشه رو داریم یه سنخ مناغش هم اخباری های شیعه معتقرش شدن که و معتقرش شدن که از مجموعه روایات اهل بیت هم در حقیقت هنگی معنا استفاده میشه و اینکه اصولاً اصولا به عمومات کتابی نیمیشه تمثل کنیم اطلاعات کتابی نیمیشه تمثل کنیم این بحث معروفه عدم موجه زباقه کتاب که از اخباری ها نرشده و آقاینام مفصل از شد اگر مراد اخباری ها این باشه دقت بکنید بگم متون کتاب متن کتاب از کبیر قانون اساسی است اصلا وضع نشده برای تناسب به اطلاق یا امور اون در کلی به اولی اصولی های ما در مقام اصل تشریح است نه در مقام بیان نه در مقام اجمال است بلکه در مقام اهمال و یا به جای این تعبیرها و اون تعبیری که من عرض میکنم از قبیل قانونه اساسی از قبیل قانونه مثلا مدنی یا قانون خاص نیستن قانون خاصه نیستن یا یک تعبیر دیگه از قبیل ماده قانونه نیستن که به تمسک به اطلاق یا عموم بشه چون اعرض کردیم در اطلاق و عموم حالا عموم که یک لفظی داره تمسک به اطلاق مبنیت بر این نقطه که این کلام برای ضرب قاعده کلیه است که اندشت یا جایده حال رفشن این کش نظر شده فخص رو جاکم و ایدیه کم با عنوان ضرب قاعده نیست که اندشت یا جایده ها دقیقه کنیم این نازر و یک بحث مهم انصافن در کل تاریخ اسلام همین الان این هست و اهل سنن تَمَسُّك با آيات کتابی مثلا لم یَجَلِ شیء ال... علی اون نیست آیم؟ المؤمن کافر علا سوا شیء آیه مبارکه ها لا یَسْأَلُ المؤمن ول المؤمن ول کافر نه تمامه که من کنه کافر کافر کاملا فاقد این کمال خاص داراست ببین ظاهر آیه مبارکه استوار عدم استوار مثلا ابن حزم به این آیه تمسک میکنه میگه کافر مطلقاً دیه نداره جزائر آیه کردم مقام دیگه نداره. اصلا جمله مجرمینه که مسلمین که مسلمین، به این آیه تحسک میکنه که کافر اصلا دیه نداره. باز اون اهل سنت دیگه که مشهورشونه فدا دیات و مسالما الله اهل، به اکلام اون آیه تحسک میکنن که کافر هم دیه داره. تبلیغ جهانو. یه بحث این بود. که آیا ما میتوانیم این حدود آیات قرآنی رو به این نه انجام بدیم خب این با مشکل این در نظر آقام لات خاسم هم در قرآن فرنه و همهال اونز وجود خب این یک طرف تمسا کردن به ظاهر اون آیه به اطلاع آیه یه در تمسا کردن به این طرف افا نجا به مجزمینه که متقیم من منکان مهمن که منکان فاسقا لایسته بون و شما ممکن است بیگه اصلا ناظر به مقام دینی نید لایستمون یعنی حقیقت کافه غیر از موسیقی کجاش توی به دیه داره؟ کجاش اشعار به دیه این یه مسئله بسیار مهمیه که اخباری ها خب از این جرحلش کردن و اون مسئله به اصطلاح کلی که اصلا آیات کتابی رو ما در فقه بهش تمسط نکنیم خب دلکت بکنیم البته اخباری این مطلب رو نگفتن من قرار نعرض کردم اگر ما این مطلب رو به جای رو بگیم اون شناعت و اون به اصطلاح تعجب عجیب رو نداره خلاصه این بشه آیات احسابی به منزله قانون اساسی هستند روایات پیغمبر و اهل بیت منزله ماده قانونیه ثابت بشه قاعدتا نمیشه ولی روح قانون بیشتر جنبه‌های اون روح قانون مقدمه نمیشه. می میدونم خود قانون اساساً به اطلاقش نمیشه که اینکه بعد تفصیل میشه به الا اطلاق لفظی برش منحقیت نمیشه نظر مثلا کشور مثلا در معاملات خارجی مستقلت خب اون مطلب مطلبه اما اینکه حالا نحوه استقلال چیزی و خود اینا رو بعدها قانون معلیم نکن اینا ما بیان بگیم در شریعت همینطوره اگر این مطلب درست شد این ااشغال خیلی مع فی رو که متاصل نمام هم این به اخباری ها میکنن مثلا از معامان ندهشروط و اخباری ها به عموم تمک میکن اوفوب اووقود نمیکنه. خب میگم به سرهمشهفهم شروعوط هم جمع اوغلا جمع جمع. چ چهطور شده تمک بکنید؟ سوال اینه چرا به اوفوب قود تمک نمیکنید اما بر مامون ندهشروط نمیکنید جوا بحث لغظی نیست؟ آیا چه کتاب برای اصل قانون گذاری است؟ بیزا به شناسد نمیکنه سنت برای ماده قانون هدف از سنت بیان مواردی است که یعنی یک قاعده کلی ذره قاعده کلی است که یورجائیله ها اندشک این نکته یورجائیله ها اندشک در رفع این رجوع به متن قانونی رفع شک در کتاب نیست اینکه آمد با فخص لوجوه حکم و ادیتکم الی مرافق این ناظر نیست مثلا یه بار دست می‌شورید دو بار می‌شورید سه بار می‌شورید چهار بار می‌شورید اصلا ناظر نیست بیمهامون دست قبل از صورت می‌شورید صورت قبل از دست می‌شورید از بالا آب دارید این از پایین می‌شورید منکوسن معکوسا اصلا ناظر نیست دقت می‌کنید این شک رو ناظر نیست این شک رو بردار خودت خب انجام اما وقتی آمد روایت که پیغمبر فرمودن که حضور باد اصلا منل اعلا باشه این ناظر این فرقش اینه لذا اینجا این بحث به طور کلی ریشش در اون بحثه وشتنه با قول از رو کردن یا آیه بعدی به طور کلی ریشش در اون بحثه آیا این یک اطلاقی داره؟ مثلا آیات مکی غالبا تو مقام این اطلاق نیستن مگر بگیم بعد در مدینه در مقام مثلا تلاوت اینها پیغمبر جوری مثلاً برخوردنش که اخلاو، در مدینه آیات غالباً در مکی غالباً در مقام تشریع ندیدن. پس بنابر این اشکال به نظر ما اساسی به ورشتن و قبول از آره این سوره حج این آیه وارد سوره حج. یکی از عجایب سوره ها واقعاً ما صدنه عربی. خود اهل سنت هم بعضیشون مکیه بعضیشون مدنیه بعضیشون هم مکیه و مدنیه مخلوطشه اصلا نمی‌فهمم. بعضی تو سفر نازل شده بعضی تو حضر نازل من خود این آیه رو من نمیفهمم چون این آیه قبلش آیات حجه ولی یسبهو بالبیت الاعظیم و یوفو النزور اول اینکه آیات حجه عادتا آیات هاشو من دیگه تو مکه حج بوده مسلمان تو هر شرکت میگن خود برنامه تو هر شرکت میگن چون مشکل حج انجام میدن رسما مراسم بوده حساب بوده و تشکیلات و لوزا و اگر آدم نگاه بکنه مقام تشریعش بیشتر میخوره به مدینه از اون ور بشتن با ریست منال اوسان قبلشه بشتن با قابل زور ریست اوسان مال مکه هست مال مدینه نیست ریست اوسان در مکه بوده لذا انصافاً خیلی ما از این آیه الان نمیتونیم خیلی روشن بفهمیم شواهد ظاهریش به مکه بودن بیشتر میخوره شواهد و طبیعتا از کردم آیهات مکهیه که مقام اصلاح نداره اخلاق اصلا قانون نموعه یا خود این سوره ور که بعد از آورش یا ای یوهناس بعد از آیه الذین آمنو مثلا ای یوهناس رو مکی میخوره یا الذین آمنو به مدینه میخوره خود همین سوره حج اینطوریه احتمالی که انسان به میفهمه همون حج که در مکه بیان شده به اون رسم اوسان هم مناسبش همینه ولی ساز اینجور جور آیاتی ها در طبیعت اولیش اطلاق نداره مگر اینکه که پیغمبر در ایام مدینه در مناسبات مختلف تمثب کرده باشه. چون این هم هست که بعضی از آیات یعنی دو جا نازر شده اون دومی از جرح در واقع مثلا با قربا حق و این در مکه نا دو تا آیه هست این هر دوش مکیه. این اشکال نتیمی و دیگران این سندگی همون تأثیر چه شما این تو فدک نازر این یک نحن نزوله فجاع جبری فقاله و آس زرگار با حقه همون و در تفاصیل ما و اهل سنت که این مطلب آمده تمام آیه رو نیوارده جبری همین مقدار بلا آیه بیشتره با با و در زرگار و حقه همون مسکین این جاع جبری و این نزول نزول تطفیخیه که در مورد خدک حضرت تطفیخ فرموندن به دادن خدک به حضرت زهراب و آنان زرگاره همون اگر تطبیقی شده باشه بد نیست داده و الا طبیعت این آیات طبیعتی نیست که اطلاق داشته باشه و با این بیان ما اون اشکال آی خوبی که اگر ثابت بشه کتب زلال مثل حیات که عبادت هستن خب باید مثلا اعلامشون کن ظاهر این آیه که اینطوره طوره بشتن رو رسته بندن اونسان بشتن رو قول از دور ایشون صدر آیه رو خب ظاهر آیه رسمنر اوسان در قبال در اداد زور قرار گرفته به یک تعبیران هست پس اون اشکال از آی خویی منتفیه به نظر ما اما این مطلب میمانه اون مطلبی که به نظر ما هست اون مشکل اینه که اجتناب قول زور، و اجتناب از حرف کچ این درسته این صحیحه نه این که باطل باشه و به اصطلاح حالا برفرز هم یکی ما بگیریم بگیریم قبل از تشریعش یک نوع حکم عقل هم هست من چون یاد هم نوست در حال ما دارم وقتیش هم مساعد نیست من خود من یک تقسیم بندی خاصی برای آیات احکام کردیم که در کلماتشون نیست الان اینجا فرصتش نیست یه وقتی در اون تقسیم ارز کردیم بعد از آیات احکام در حقیقت حکم عقل عملی رو دارد. این وشتنه و قول از دو ما حکم عقل عملی است که دیم این چیز خاصی ن حکم عقل عملی این به, به وسیله آیات تو با هم قاعده که با لحکام شریعه عقلیه به وسیله آیات تاییشه مثل کلوبش را تا سفه این هم حکم عقل عملیست فرحام میکنه در اینجا به ذهن ما این طور میاد که این سنخ آیات رو بیشتر ارجاعش بدیم به حکم عقل عملی اگر ارجاع شد تمثف به اطلاقش یا عمومش بیقاید سعوبت علیش مثلا آیه تعبدی نیست که حالا اطلاقی داشته باشه حالا اگرم ارجاش ندید به یک کفت مولوی بدونیم مشکل اساسی کار اینه یعنی مشکل اساسی اونجا کلمه قول گفته ما مثلا قول رو تضمین بدیم این نقطه ظره میخواد قول باشه میخواد نوشتن باشه این رو ما تضمین بدیم قول زور رو به جمعی مراکز یک اون اجتناب رو هم تضمین بدیم به جمعی مراکز این باید نوع اطلاق برای آیات منعقض بشه سبوت اطلاق برای آیات به این دهاز خالی از اشکال نیست به اشکال اخباری که کلن ندارن آیات اون کیچی اشکال دیگر و اصولی‌ها ها مقام فهم آیات که اصلا در مقام اطلاق هست یا نه در رمایتی به جنات هست شما قول دیگه جنات اول عرض کردم قنات در بین عرب ها قناتی صوتی بوده این جنای که از هو علم ریاضیات موسیقی بچین، نمی اصلا نبودن، نداشتن، ارگان نداشتن. این جزو فنون ظریفی بود که یونان داشتن اما عربان نداشت مثلا یکی تار بزنه، یه تنبور بزنه که از مجموعه اینها صداهای خاصی یا مثلا بول موزیک سمفونیک تشکیل داده باشه، این نمی، اصلا نداشتن عرب. تنای عرب‌ها اگرم تار و تنبوری دف همراه با صوت بوده. همیشه و آنها هم ان الصوتین صوت شی، این سوته این صوت بین این به صوتی بود علایه حالا غنا اصولا در دنیای عرب اون دنیایی که محل اصلاح بوده اصلا دستاد موسیقی نبوده تماما دستاد صوت انای صوتی بوده اگر اگرم توش آلات موسیقی بوده همراه غنا بوده اصلا غنا اون بوده حالا اون بحثم ایشاده در بحث غنا متعرض میشه پس بنابراین بعید نیست ما آیه را اولا بگیریم شامل غنا بشه بختان بشه قیبت بشه سب مؤمن بشه اونم قول رو دیگه احانت کردن فرش دادن هرچی که از خطفت انسان، اصلا خدا آیه داره هنفا الله غیر مشکین داره بشتن بو هر رئیس سمنال اولسان بشتن بو قول زور آیه بعدیش هنفا الله خیلی بردن من واضحه یعنی شما با اجتماب از قول زور به همون خطفت اخی برم از کلام کج از راه باطل راه کج این مطلب درسته یک این شبیه احکام عقل عملی چیز نیست این قانون به اصطلاع شرعی نیست دو قانون شرعی یعنی حکم تکلیفی نیست حکم مولوی هم باشه ببخشید حکم مولوی هم باشه وضوح نداره اطلاقش سیاق آیات اطلاق نداره مثلا وشتن با منال اوسان یا بهش تمسک کردن که صلیب آویختن هم جایز نیست. انصافاً آیه به این جذب اطلاق نداره. مگر در یک روایت ثابت بشه که مثلا در لغت عربی به صلیب وخن میگفتن. اون بحث دیگه نیست. الله به مجرد اینکه اوسان که بوته. حالا اوسان که بوته. حالا یه کسانی پیدا میشن فارسی مثلا موبایل مثلا بوت میکنن مثلا. این صلح نمی‌کنه درش. اطلاقی آیه در این جذب شامل نمیشه این رو میبردن دیگه وشتروارسی اینا بت اونم چه چه رستری مسلمان گرد گذانسته که بوت چی شده که دین در وسترن هست این بوت رو تعویل کردن این خلاف ظاهر آی عمره هست قوله هم همینطوره ظاهر آی که قوله ما اگر باشیم و خیلی به قول معروف تمسک به ظاهر مثل کتابت رو و کتاب رو نمیگیره نوار رو نمیگیریم، مثل سیار سی نمیگیره ظاهر قول قوله حالا ما اگر از هم درست برداریم این که این اجتناب حقیقتش چیه مثلا بگیم وشتن وقال از دور شما کتابی که باطله صحافیش هم نتاگید انصافا شمول اینجور چیز خیلی مشکله وشتن وقال از دور پور نگیم یک کتاب باطل بنویسیم. کتاب باطلی هست و بخونه بخونه اون تو طول افناسایی کتابتون نگذاره هیچ کسی نمیخونه خودتون از دیرون چون ظاهر هم نمیخون در واقع مرحوم صاحب حدا همینه ما دلیل نداریم که حجزه کتب زلالین از حرام باشه اشکال معدد دهرانی اینه فرض کنید شما یه کتاب های کتاب‌های باثق، لواحی مثلا به نسبت کتاب‌های مؤخر به جنسی هست سوال قبیحه توی جای گذاشتیم نه خودتون نگاه می‌کنین نه واسه درشم گفت کردین ظاهر عبارات اصحاب ما حجزه کتب زلالین حرامین هم حرام ظاهرش لذا برای ما اردید برمان بحرانیش کنه که الان در نصوص نیامده این مطلحا و چطور ما می مثلا چین چی چیزی رو حرام بدونیم تصور بکنیم این وجه تنه قول از دو این نقطه روشن شد حالا قول شامل کتابت بشه شامل تجهید بشه شامل صحافی بشه شامل چاب بشه شامل نه این تمام این رو باید بگیم دیگه خور به قطعه در مباحث ازمی سنید در این مباحث خالص همیشه حدرت اینه که خودتون فکر بکنید این کارشون مثل آیه فرام به نظر ما اشکال اساسی در این آیه های آیه آی آی آی دن رو همینطور یه خیلی معترسیت نمی کنید اشکال اساسی این قسمته اخباری ها خب به طور مطلق میگن اون که هیچ مثلا آقایات کتاب عموم نداره اسلام نداره از کلم مقاله اونها هم به حذب � همچنان اون رو نمی‌گه خب چون جنبه اونdishu تم اطلاق داشته باشه اوبلغه نداشته باشه جوابش ما از کدی نه اخبار نمی‌شه این توضیحی فنده برای کلام اخبار اخباریا مثلا بگن وضع شریعت مقدسه اینجوریه با کتاب ماده قامی بیان نشده هدف کتاب اون چارچوب تشریع اونی که ماده قامی ماده قانونی شی یعنی یک داره که شطر رو با او برداری. به قانون کلی ضربه لعک لرفع شک به بگی این و شک با کتاب نمیشه که شما اگر شک کردیم یک بار دو بار سه بار چهار بار بشونید در وضوع بگیم اطلاع کتاب میگه همین درسته پس این برای این جرد نیامده فقصد اون جرد این نیست مفهومه حسی او سوریه ها آمدن موردی بحث کردن که مثلا این آیه در مقامه اطلاق از این جرد مید اخباری ها به اطلاق گفت که برزنباله چیگه هم فلدهی به نه فلدهی بیتا تمام قرآن از این قرآن شما تمام آیات و احکام قرآن از این قرآنه اصلا برای رفع شک نیست. به خلاف رواید به خلاب سنت پیغمبر وقتی پیغمبر از همون المؤمنون اندشروته این اصلا در مقام رفع شکه اصلا برای این جرد جرد چون پیغمبر در مقام ماده نیست. راکیان این دو تا با هم یه ها به انصافا کلام اخباری ما از خیلی در بعضی از آیات بر حرفی است اما در همه جا نه انصافا بعضی از آیات قابل تناسب به اطلاق حرفی است داره که من رهنمود متعارفا فعلا جورش اینجوریه این پس نکته اساسی این است که اون حدود اجتناب به اطلاق آیه الان نمی‌خویم تناسب بکنیم خود متن آیه دلالت آیه جوری نیست که دلالت بر این قسمت رو کن. در این که باید قول زور یا کار زور یا باطل یا کج یا انحرافی این رو باید تو زندگی برداری اینجای بحثی است این حکم عقل همه هست عقل عملی همه هست این نمه اون بخش لحظی تمسخ به اطلاع این مشکل کاره باشن شد ما به این اطلاع آیه به این لحاظ نیمه چن تلاش بکنید این خلاصه اشکال این راجع به آیه اول آیه دومی که ذکر شده با این خب، این در کتاب نمیاد مثلا باز بازم هم میگم همون اجتناب از هم، مادهشم نگاه بکنیم مشکل اینه آیا شامل تجلید هم میشه در این این تجری بمن تکیما میبینم کتاب به طرف مقابل این این اطلاق به این لوهات تعبوت اضافه کنیم انسان روشن یکی از آی ورکه من من الناس من یشتی له ولحدیث یذل عن سبیل الله و یتخذ اوذ و شيء الای که پیزه تذابل تقدیر بی تفصیل آی یعنی نشتی کتابم فی له ولحدیث و این ش... شرا فتش ملو حفظ کتب زلال ای زن. چون اگر اشترا این قائده شما دیگر از کردم اگر اشترا باطل شد یعنی جمعی آساس شما اصلا شما نمیتونی بخرین در میتونی داخل اصلا داخل نمیشه اگر با شما کتاب مثلا کتاب نخرید یا آنی زن رو نخرید فقط شور نیست نگرداری شما حرام چون اشترا سلطه انسان یعنی اشترا برای خیلی پروشه وکه این روحش بشید سلطه ای انسان بر ما این روح اشترا. وقتی شما کتاب رو میخریم برای اون کتاب سلطه داریم وقتی آمد گفت این اشترا باطله یعنی سلطه شما باطله خوبی قطع کنید سلطه شما هر نهره از ها بشه وقتی گفت آنی زبت زنخد یعنی نگهداریش تو اتاق بذاشتنش توش آب خوردن فرمز که آنیه زرده زرده اونش توش آجیل بریزین برای مهمان بیارین وقتی گفت نخر در حقیقت جلو تمام تصرفات شما رو میگیره اینجا هم همینطور گفتن چون این تا ایخوی دور تبرید نبرموندن نیست عباده شما قبل تبریدش اینه نهی از اشتراح یا تبریه اشتراح مستلزمه به عدم سیطره شخص بر اینه پس لحول کتاب کتابهایی که بازیم بعضی شو فهم می‌یابند اول اولم مزمو در زای اشاره لحول حدیث ازلال لیو زل به هم سبیل الله توی ازلال هم داره و من الوازه این نهایت معنا ان انبه بذکوته زلال بله دو بحث از انسان یه بحث است که انسان با کتوبه زلال ازلال مردم بکنه این یه بحثه یه بحثین از که کتب زلال فی نفسه میخواد ازلال بکن یا نه از مثل این آیه همزه که ایشون فرمودن ظاهرش اون اولیه البته این احتمال داره یک توجیحی بکنیم جا وان که توجیح بگیم شعنش ازلاله نه فعلیت ازلال اصلا کسی که لحول حدیث رو میخوره کتاب زلال این شعن ازلال داره ولی که این توجیحه و خلاف ظاهر آیه مارکه و ثانیه اگر قبول بکنیم شرای کتب حرامه لا دلاتفی علا حرمت ها و حفظا بعد شراع کما انت تصویر حرامون و اما اقتناعه فلیسه به حرام و زنا حرامون و تربیت تا اولاد زنا لیزه به حرام این مثال دوبا ایشان که خیلی عجیبه زنا حرامش رفتی به بلد زنا زنا موجود و مستقلیه تکلیف بره خودتون اون که رفتی شاید مقرر اضافه کرده شنیشان هسته <تصفح> <تصفح> بله صور همینطوره تصویر حرام لیکن اقتنارش حرام نیست لیکن این اشکال های خوی به نظر ما خیلی وارد نیست چون این بحث اقتنار رو ما تعبدن آوردیم ارز کردم در بحث تصویر مفصل عده از دهن سنت به خاطر اینکه که تصویر حرامه و حروش هم حرامه نگه تو خونه هم حرامه اقتنا همه حرام میدونن این اینطور نیست این اشکالای خویی وارد نیست ایشون میبن تصویر حرامه اقتنا نگه داشتنش حرامه اون تعبود آمن این که ایشون میفرمان اگر حرام باشه اشتراح حرمت افقا از کجا این تصویر از سرم شد کار مقر تصاووت مسی درست فهمیدن قدس الله سره و آلشون رو کرد ما نه به طور معدل ظاهر تصاووت بند سرینه که اشتراک کنایه از سلطه انسانه وقتی اومد گفت اشتراک نه این سلطه تو نه یکی از اون وسایل حفظ بشه یکی فرض کن مثلا کتاب رو مطالعه بکنه کتاب رو هدیه بده این سلطه ای انسانه وقتی, های انسانه. وقتی میاد نفی اشتراک میشه نفی سلطه میشه وقتی نفی سلطه بشه هپسر هم حرام میشه پس این اشکال دوم ایشان وارد نیست سال سنقیل اینال آیا نظر نظر ابن حالا یه شرحی داره آل. مازم این صحابه هم کردم راسته و ظاهرا شواهد معید همینه اما اینه من کلام اینال مورد داره خواسته وارد بوله مروم ارز کردم نظر ابن نه اینه کرده یا کلده معروف کلده هست میکنه معروفش کلده هست این حارس ابن کلده طبیب معروف عرب از این معروف طبیب معروف چون که در دانشگاه که بیشافه و دریگان بعد برگشت به حجاز و طبیب مرب و همین حارس ابن کلده هست که کنیزه که میگوام سمیه داشت که مثلا در نصف احل فوجور و اینها بود که مادر زیاد این اینها کنیز همین حارس ابن کلده است و گفته شده حارس ابن کلده هم در هم روزی که پیغمبر از اون شات مسموم خوردن با پیغمبر خود مر رسند چون این شنطه بودن بود برای ازو با پیغمبر خود از اون شات مسمومی که اون یهودی او بود پیغمبر فرمودن که جری می من خبر زده که تو این گوش سم برگردونن اونا خوردن مردن یکم حارس نغی هم شده که نه اون در محادثه کشته مرد نشد بعد مثلا مرده راجب حارس ما در اسلام چه دیگر یه کاری که چنین کردنش خوب در داره یکی هم به نظر پسر حارس یعنی خواهر خلیجر زند داشته یعنی واجناق پیغنبر بود این خیلی یه دو معاندین سرسخته یهودی سع... سعی سرسخته از این سرسختهای ضد رسول های کشی ایشونه امین. ایشون هم که نه نواید بوده احترام این نظر ابن حارسه مثلا فرسون بینید که چون ایران هم آمده بود این قضایه های رستم و سندی رو از تو هم شاهنامه که ن سوارش ایران خونده بود در مکی که پیغمبر می اومدن قصای اब्राहیم و موسی میگفتن این به عربان میگه بیاین پشت من این حرفا عجیبه بود در اصل مثلا قصه‌ی رستم و سنجو این حرف رو نمد این از اون بهتر مثلا سازه‌ای که من دارم یکی هم چند تا کنیزر گرفته بود این رو این که اینو گذاشته بود برای اینکه مثلا جوان‌ها رو جذب بکنن شراب بهشون بدن الی آخر کارهای زشتی می‌کنه و لزای این آیات لبن الناس و نشری لهل حدیث نزا احناده لحوال حدیث در آیه هم غنا باشه هم همون قصص عباطی رسال رستان محسان دیاره غیره به نوکان یشتری پتوانفی ها احادیث الفورس حدیث رستان محسان دیار بله این اشکال البته ظاهر آیه هم به همین معنام میخوره الله. اگر ما باشیم و ظاهر آیه چون این در سوره لغمانه و سوره لغمان جزا آیه مکیه هست. اصلا در سیره داره این نفر یا اسمش رو نیست در ایام حجمی آمده او هم امراغی از لغمان داشته کتاب از در اجاز خیلی کم بوده یهودیا داشتن از سیاره هم داشتن مثل برقصه نوفر در مکه این آقا قصص لغمان هم داشته و در کتب سیره یک مناظر یک مناظره بینیم با که پیغمبر میگه که این کتابی که کتا تو از لغمان نرونست کتاب من نمیتی چه عباسه رو یادم هست. در سیره دیدم و الان مضمونش تو زهنم نیست به هر حال این قصه در این آیه مبارکه در سوره لغمان آمده و انصافش با شواهد آیه معید این مطلبه که لحوال حدیث شمال بنام بشه چون چند تا از کنیزکار رو بر این کار زشت گرفته لکن خب همون اشکال معروض دید. یعنی مورد داره خصوصواره مخصوصا اگر فرض کنیم بعدها در دنیای مدینه به عموم آیه تمثب شده جواب و اساسی است که من عرض کردم این یشتری لحو حدیث این چون له اگر ما باشیم بخب... نمیده بگیم لحو حرامه و یک معنی خاصی از لح باشه نه مثلا که باشه و این از اون استفاده به اصطلاح اشتراح میشه کرد اما اینکه به جميع مراسم که اسلایق اون گفتن مثلا حفظ کتاب به عنوانه مثلا تو بوشه قفسه گذشته لیشتری ده ول حدیثه و زله لی اذلالی یعنی هم هیچ چیزی گوش نگردوند بگیم این هم حرامه بذارید صاف شوشن در نمی داد. رابعا ما ذکر المحق و ایروان من ان المراد من اشتراط انجام دادن یشتری انجام دادن. که شما قرمه مطلب درسته که انصافا هم مطلب ایشان خیلی روشن یه خیلی بحثه میکنه این دو تا آیه که قرمو استاد نقل فرمودن این آیه سوم هم حث در جواهر امام شهنه آورده فبین الذین یتلونون الكتاب بیدیهم ثم یقولون هم من عند و ما, ما یک یک هم فبین ان هم ما یحکمون یحکمون چیزهای عبوره در این آیه هم صاحب جواهر تمسک یعنی عبوردن آیه انسان به قضیه این آیه مبارکه ان تو کناع شده از ذیل این آیه دیه یک ظهور این کتاب بدی اصلا معقوله هو من اندلا این یقولون او من اندلا هم کش داره یعنی ایمان به اون اباطیلی که نوشته به و کفریاسه و مسائل و لازمم نیست این مسائل باطل مثلا شعر باشه فردل باشه اصلا پسونه کسی اگه کسی صد در در کردستان ایران ادام به پیغمبر من دین حساب به نام کلمات الله این آخرین کلمات الهی که بر بشر خیلی هم مشرجش رو غلط و مغلوط و خیلی چیز مزخرف حساب کرد این کار تشریع نده خب من ترجیح میدم چی اینا با من باشه کلمات الله روی داده باشه اخر باشه و دینم خلاص ام در اصل این که حالا این یک ثونه کتاب بیبی هستی مغروض من کار به باطل نذارید چیز در یک الفاظ خیلی سوابی رقیقی به نظرم عوام سر بوده اصلا هیچ نداشتم چیزی مثلا کوزه کشتنش ندارم حالا سمیاتی بهمان که مدعی منقوص بوده کشتنش کتابش موندن کلمات اللهش دیگه در این که این ظاهره ای اون که اینه ولی مثلا توش مخالف هست این بحث اخلاقیون در قرآن نیست این دینی بیره باثی مراد از اونجا اون قسمت اینه نه این که بعدم اسناد اله الله مراده نه این جوری که محل کلام انصافاً ازیه استدلال به آیات تمام نیست که استاد مسئله مساله پنجم این که این ترتیب ایشون به اندازین به خاطر وزن کات حسنه عبدالملک بن عیا که تقدم ازش مبحث طنجیم همون اهرخ خطوبک من صابره ام کردم تعبیر به حسنه شاید مثلا خیال میکنه محمد بن هری ماجذبه مثلا ممدوحه علاوه بردارشون برگشتن این مطلب رو قبول نکردن این روایت به معنای خودشان ایشون ضعیف اشتباه نشه این مال اون ایام هست که مبانی رجلی ندشه این تعبیر حسن تعبیرونه کما اینکه ایشون در هم در صغراش اشکال دارن یعنی محمد بن علی بهشون ایشون توصیه نکردن قبول در خبر و هم در کبرا هم ایشون ظاهرا مالشون نوشتن شاید به متواعده ایشون برای حدیث حسن ارزش خاصی قائل نبودن ما در درس این حدیث رو دو قسمه یا مواتر و غیر مواتر این 14 15 16 قسم دیگه ایشون چون حدیث به اصطلاحشون یک چار جسم اصلی داره که صحیح و ضعیف و موثر اینا و احصاب تفریعی داره تا 28 تا 90 تا 80 تا هر کدوم به حسب ذوقی خودشون نوشتن این حسنه رو غنه سنت آوردن گفته شده اولش هم ترمذیه بعضی مصنف لقب ترمزی اومده و خود اهل سنت هم در اینکه حدیث حسن چیه اختلاف دارن چیزی نشون نشه، یک حقی نیست یکی نشون نشه، حق نیست، نشه باطله. چون هیچ مستند نداره. اصلا تفسیر حدیث اصلا پیش اهل سنت تفسیر نداره. پیش ما تفسیر پیدا کرده. علامه اولین بارم علامه. راویش یا بیشتر از یکیش امامی ممدوح باشه. خب به نظر از این فایده نداره امامی ممدوح باشه این تا توثیق نشه بشه فایده داره. هم شد معتبر میشه. نزای ایشون حدیث حسن با قبول نداشتن اصلی برش خواهر نیستن حسن بعضی از رجالیون و از فواها حدیث حسن قبول داشتن این به درد اونا میخوره اما ایشون حدیث حسن قبول نداشتن نه و از کرد اولین باری که حدیث حسن در اصطلاعات شیعه آمد طبعا یک رأی وسط به بین حجیت را حجیت رأی علامه در کتب خودشون که مختلف بیه مثلا لنا انهو حدیثان حسنان ولا معارضه ده اینشون هر کش اینه حدیث صحیح اونه که با وجود معارضه هم حجته حدیث حسن اونه که با وجود معارضه یه حجت میگی مثل شما شما حجت متوسطه مثلا یه ای چیز اینجوری یه حجت مرحوم قصده هیچ درجه حجیه دارن سهتا قائل نبودن که دارم ما در درستیه حسن و, موسق و این حرفا اصلا حسن نیم گفتن. موتبه نیه لیموتبه نیه. خیلی اگر تعلق داره منظورم داشته که مال این دور آخریشونه. موتبه نیست خیلی. چون ایشون نظرش نیه که خبر سرور هدجتیه. که خب بلکه بسیار با دارد. اگر نوجو نیستی. حالا حسن بودن و مواصله‌و این هیچ یه چیز بودن. به نظرشان هیچ تأثیری در قسمت نداره. پس این تأثیریشان به حسن یا عبدالملک یک. به تعبیر مشهور به تعبیر ایشان این به باید معتبر نیست به خاطر محمد علی ماجیلوه و دو کبرا هم تأثیری نداره در نظر ایشان ظاهرا محاکاتن للغه در حتنه و بعدم جواب دارن که پردار انشاءالله